أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والهُل الحمد و به نستعين و هو خير موفق و معين با ذکر صلواتی تقدیم بر محمد و آل محمد شروع کنیم بحث امروز رو اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. خب ما به حدیث پنجم از کتاب کشی تحت عنوان اختیار و معرفت ناقلین یا اختیار و رجال یا رجال کشی هرچی هست اسمش به حدیث شماره پنج می رسیم قبلش اجازه بدید من یکی تا نکته در مورد حدیث چهار در دلم هست اینو نگفته رد نشیم هفته قبل ما حدیث چهارم رو خاطرتون هست در چه منابعی آمده بررسی کردیم اون منابع رو اجازه بدید یه بار با هم نگاه کنیم یعنی حیفه اینو رد نشیم ازش یه ای توش هست از این جهت نمیخوام ردشم. شم حدیث چهار در چه منابعی آمده است یکیش در کافی گفتیم جلسه قبل که نوشتیم در کافی آمده اجازه بدید در اینجا پیدا کنم. آها ببینید حدیث شماره نود و پنج از جلد یک از روزه بود دیگه این حدیث رو فیل جمله تونتون براتون میخونم حدیث خود چشی هم یادتون هست دیگه خاطرتون هست بذارید اون رو قبلش اون رو بخونم براتون بعد کافی رو ببینیم ببینید حدیث چشی این بود تو ذهنتون نگه دارید مطلب چه دارم چون اینا رو باید با هم مقایسه کنیم بیفرمایید که چتبه علی ابوالحسن الاول و هو سجنه و اما ما زکرت یا علی یا من من تأخذ و معالم دینه که لا تأخذن معالم دین که ان غیر شیعتنا نه این نکه انتعدیتهم اخست دینه که ان الخائنین الذین خانوا الله و رسوله و خانوا اماناتهم انهم اتمنوا علا کتاب الله جل و علا فحرفوه و بدلوه فعليهم لعنت الله و لعنت رسوله و لعنت ملائکتهی و لعنت و آباییل برره و لعنتی و لعنت و شیعتی اله یامل فی چتاب تویل معلوم میشه نامه خب ارز کردم مفصل بوده این بخشش رو اوورده حالا در کافی هم با عنوان نامه علی ابن سوید که از امام کازم نوشته شده داریم خب این قسمت مقایسه رو بزنید قشنگ جا میاره ببینید چقدر قرمز هست کافی یعنی بسیاری از متن اون نامه در کافی هست که چشی اینجا اون رو نیاورده خیلی فراوان ببینید حالا من سریع مروری عبارت کافی رو برای تو میخونم میفرماید که چت تو لایب حسن موسا و فل حبس اینجا تو کافی اون نامه نوشتن خودش رو هم میگه من به امام کازم نامه نوشتم از حال و احوالش سوال کردم و از مسائل ای پس ببینید مسائل چسیره سوالات زیادی بوده. میدونید چرا اینو گفتم؟ الان این مسائل چسیره توجه منو جلب کرد. که اگر دقت کنید اگر در گوشه چنار چتاب های حدیثی حتی قسمت های فقهی دیدید که علی ابن سوید از امام کازم ممکنه همین نامه باشه چرا؟ چون خودش داره بگه من سوال های زیادی از حضرت داشتم پرسیدم اون جواب ها ممکنه به روات ما رسیده و در کتاب های حدیثی نقل شده لذا مثلا یه سوال سلات بوده، یه سوال زکات بوده، یه سوال خمس بوده جدا در همون باب خودش میاد این نکته داشته باشید فهته مثلا جوابا علیه اشهرن چند ماه جواب نیومد بعدش از جواب رو دادن با این نسخش بسم الله الرحمن الرحیم میبینید نسخه کافی بسم الله رو چه داره یعنی گویا از اول این نام زکش شده الحمدالله العلی العظیم اللذی به عظمتهی و نورهی اب قلوب المؤمنین ایناش دیگه هیچی اینا رو رد میشیم فرصت نیست فالحمدالله اللذی عرف وصفت دینه محمدان صلی الله علیه و حاله اما بعدو الله من آل محمدن به منزلت خاصتن یادتون باشه جلسه قبل چشی یک روایت دیگر هم مربوط به علی ابن سوید داشت یادتونه حدیث هشتد این قسمتش به اونجا میخوره حدیث چششی هشتد و پنجاه بیارم از گفتن همه اینها یه مطلبی رو میخوام خدمتتون ارز کنم که هنوز نگفتم ها هنوز اونو نریستم هشت سد و پنجاه و نو اها ببینید فلحمدالله لازی عرف وصف دینه به محمد ببینید اینجا با اونجا یه ذره فرق داره اما بعد و فعی نکه امرون انزلک الله من آل محمد به منظرت خاصتتن این از عبارت چشکی 859 این هم از عبارت کافی. فا این مکه امرون انزلک الله من آل محمد به منزلت خاصت هم. ببینید قشن کافی اینو پوشش میده. یعنی هر جفتشون همدیگر پوشش میدن. ولی خب کافی چون کتاب محکمتر و معتبرتریه. کافی کتاب حسابیه. کافی کتاب درجه یکه. لذا با میگیم کافی اینو حمایت میکنه و پوشش میده. الان اگر یه ذره هم آدم خیالش از جهت روایت مثلا یه مقدار دغدغ من بود الان با دیدن این تعبیر میبینید که کافی هم همون گزارش رو آورده پس ببینید کافی مفصل نامر رو آورده چش چهار بخشیش رو آورده که از چین اخص کنن چششی 859 هم قسمت مربوط به خود اون آقای علی ابن سوید رو آورده اینم از این حالا چون نیست دیگه کافی رو خودتون مطالعه بفرمایید یکی دیگه از اون کتاب که این چششی کشی توش بود این حدیث کشی توش بود بسایر و درجات بود علیه یه سنانی که جلسه قبل گفتیم بسایر و درجات این آورده شما متوجه شدید دیگه این تصحیف شده سایی هست سنانی شده در اینجا ان ابوالحسن امام كاظم انه كتب اليه في رساله ولا تقل لما بلغك ان او نس و الينا هذا باطل فلان اینم یه بخش دیگری از همون نامه است اینم از این یکی دیگه بود قربل اسناد قربل اسناد خب بستمش من بذارید قربل اسناد رو بیارم قربل اصناد حدیث دوازده سی و پنج دوازده سی و پنج اگر نکته ای الان این مطالب رو چه میگم نکتهی به زن تون میرسه بگید ببینم همون نکتهی که من میخوام بگم یا نه یعنی در آقه یه پیشنهاد میخوام بدم خدمت شما یه پیشنهاد پژوهش یا تعلیف حدیث شماره دوازده چقدر هم حدیثاش طولانیه اینجا بربولستان از پست نرسید مثلاي خب، بزرگتر کافی رو چه دیدیم دیگه؟ کافی رو دیدیم. بعد بله، هدیم باید ببینیم. یعنی هر حدیث رو میبینید، ببینید این حدیث کجا هست؟ خو؟ خب، ولی این هم قربال استاد. حدیث 1000 الابن سويد الصاعي قال كتب الي ابو الحسن و عليه السلام في كتاب ان اولا ما انعى نفسي في ليالي لی هذه غير جاز ان ولا نادم ان ولا شاكر فيما هو كائن من ما قذ الله وحتم فتمسك بعروه الدين ال محمد صلوات الله عليه والعروه الوسیه بعد الوسیه و المسالمته و, و رزا به ما قالوم ببینید این بخش دیگری از اون حدیث هست من میخوام بگم حالا الان دیگه وقتیست دیگه الان همین رو با کافی مقایسه کنیم ببینیم تو کافی اومده یا نه البته خیلی وقت نمیخواد مقایسه خیلی راحت قشنگ کلیک احادیث مشابه بعد تو احادیث مشابه الان ببینیم آه کافی مقایسه رو بزنیم آه ببینید؟ این بخش بر اسنادم تو کافی اومده سلام بینیدکن. بربول اسناد اون بخشی که داریم این هم تو کافی اومده. این پس معلوم میشه اوین معلوم میشه که کافی گویا کل نامر آورده اون کتاب های دیگه هر کدوم بخشی از اون نامه رو اووردن. من بیا پیشنهادی دارم فقط این الان یه نکته مهم هست که ما حدیث رو فهمیدیم چه جوری و به چه شکلی تقطیع شده تقطیع نه این چه تختی همین 400 500 سال اخیر ها و سال و اینا نه تختی چه راویان اولیه این کارو کردن ببینید این تختی رو کشی انجام داده یا اساتید کشی نظر شما چیه الان حدیث چهار چشتی حدیث 859 چشی رو چی تقتی کرده از اون نامه جدا کرده خود چشی یا اون اساطیدش اشکال نداره فرز کن حضرت آقا نیم ساعت صحبت کردن شما وقتی میخوای یه تیکش رو برای یه نفر بگی کلش رو ببید بگی خب آدم اون تیکش رو خب ببینیم مثلا من میخوام در مورد سلات در مورد زکات در مورد اون تیکیه که لازمه میاره اگه بخوایم همش رو بیاریم چه تیکیه چتاب هزار زیاده میشه خیلی میشه لذا مجبور هستن به تقتی الان اون کاری که الان انجام دادیم این بود من اون نکته مهم که میخواستم بگم امروز این بود راویان اولیه این کار خود چششی نیست. به نظر کار خود. چرا؟ چون سند حدیث چهار کشی با سند 859ش تفاوت داره اگه خود کشی انجام داده بود سندش یه چی بود دیگه میگفت ها این همون سنده من اینجاش رو بریدم اونجا شو... من فکر میکنم بعضی وقتا حتی اون نویسنده متوجه نیست حواسش نیست که این همون حدیثه ولی ما الان پیدا کردیم حالا ما امروز اون نکته مهم کارس کردم اینه ما میتونیم با همین روش ها احادیث قطع قطع شده رو پیدا کنیم و به هم بچسبونیم کاری که در کتاب های مهم کافی و اینا هم حتی زیاد حاصل شده میشه هم انجام داد این یه نمونهش این کارا خیلی انجام نشده ها من پیشتهادی که حالا میخوام انجام بدم اینه الان یکی از شما میتونه یه کتاب چه سی صفحهی بنویسه چی بنویسه؟ اسمش این باشه علی ابن سوید و نامه امام کازم به و در مورد علی ابن سوید یه خورده کار میکنید؟ یه خورده تحقیق میکنید؟ سایی هست، سنایی هست، شعبانی هست داشت دیگه شیختوسی سنانی هست، سفار آورده بود اسمش رو تحقیق میکنید خودش چه جوری هست آیا ثقه هست نیست و اینها گزاره های رجالی رو در مدشش میارید بعد اعتبار سنجی خود شخص رو که انجام دادید میگید ایشون گویا یه نامه‌ای از امام کازم به او رسیده این نامه رو قشن متنش رو از کافی اصل قرار میدید نامه رو میارید ببینید آیا اون هایی که ما جایی دیگه پیدا کردیم همش تو کافی هست یا نه الان خود همین کار خیلی طول نمیکشه نیم ساعت میشه لو انجام داد با همین احادیث مشابه الان دیدید قربل اصنات توی کافی هست. 859 چشی توی کافی هست. سفارم به نظرم بود. حالا اینها رو میشه راحت دید. بعد اختلاف نسخه رو قشن اونجا بررسی کرد و حتی میشه تشخیص داد که کدوم نسخه بهتره؟ نسخه کافی خوبه؟ نسخه خود چشتی خوبه؟ یا نسخه های مثلا قربل اصنات و اینها؟ اگر هم حتی دیدید یه تیکه‌ای داریم در کتابه دیگه که اینجا نیومده اون رو میتونید اضافه کنید یا متن یه مقدار تفاوت زیاد داره اونجا اضافه کنید. پس کتابی میشه نوور کتاب چه البته 20 صفحه صفحه‌ای اسمش علی یوبن سوید و نامه امام کاظم به و هیچ کی هم این کار رو انجام نداده. این از حیث اینکه شما سازی می‌کنید یه نامه رو هفته قبل عرض کردم تشریف داشتید یا صوت رو گوش کردید هفته گفتم یه کار خیلی فنی و خیلی جالب هم هست اینه که ما خود نامه به ما که نرسیده مثلا ولی از انعکاسش در کتابای مختلف میتونیم اینو پیدا کنیم حالا اینجا خود نامه که تو کافی هست از انعکاساتش کتابای دیگه میشه این رو قشنج جمع جور و یه, یه متن خیلی جامع و اطمینانی رسید این کار, کار خوبیه میشه تو یه هفته انجام دادیم رو با استفاده از این نرم افزارای بساک شد یه هفته‌ای در کنار درساتون انجام میدید میشه این رو نوشت خیلی به دردم میخوره به مخصوصا حالا خود کتاب شاید خیلی مهم نباشه ولی اون روشش خیلی مهم میشه این چه شما در یک مقاله بتونید این رو به طلبه ها یاد بدید و نشون بدید که بعضی از روایات که در کتاب های حدیث میبینیم اینا تیکه‌پاره شده میتونید جمعش کنید اون مادر رو به ما جمع کنید و در یه کتابی بنویسید حدیث مادر رو میشه به دست دورد خیلی خب این از این اما یه کار دیگه هم من جلسه قبل انجام دادم فرصت نشد میخواستم خدمت شما ارائه کنم گفتم که حالا امروز شما این روپاقای پای هم نیستن یک کاری انجام دادم من علی ابن رو تو کتاب های حدیثی جستجو کردم گفتم ببینم چند تا حدیث داره و غیر از این نامه آیا روایات دیگری هم داره یا نه ممکن علی ابن سوید فقط همین یه نامه ازش به ما مانده باشد یا احادیث دیگر هم داشته باشه این رو گفتم ببینیم بد نیست حالا تبلا زی که من انجام بدم این کار رو اگر این سوال رو از شما بپرسیم به شما یه تحقی بگم ما روایات علی ابن سوید رو از منابع حدیثی ما پیدا کنید. به چه روشی کار می کنید؟ تو هم جامال عادیس اسمشو می زنید و جستجو می کنید. دیگه؟ شرخ توسی. نه نه اسنادش رو می ببینم. اسنادش رو می ببینم. یه راهش هم همون نرمحصار درایه است دیگه. اونجا اصلا خودش یه گذینه اسناد داره. گوزنه اسناد داره حالا من الان رو جمال احادیس زدم جستجو کنم ولی اونم هست اجازه بدید اونم رو نشون بدم در مسائل درایه میرید سراغ راوی این قسمت راوی رو باز کردین چی رو گفتم علی ابن سوید به این بلاور رو این مصبت رو چه بزنید جا باز میشه اینجا جستجو کنید علی ابن سوید ای علی ابن سووید آه اومد علی ابن سووید سایی ببینید اصنادش ست تا الان اینجا داره خب این ست تا به احتمال بسیار زیاد خیلی تکراریه برای اون که قطعا تکراری داریم توش چون این وسائل شیخه این همه مورده دیگه آره ولی به احتمال بسیار زیاد روایات زیادی غیر این نامه خواهیم داشت. درسته؟ چون الان مثلا از یه ست تا فرض کنید 50 تاشت هم تکرانی باشه پنجه تا. 50 تا که نامه را بعید میدونم. خیلی بعیده از اون نامه 50 تا حدیث داشته باشه. خب این کار نداره میشه دید دیگه اینا تو دست دیگه. مشکل نداره. اگر بخواید اینجا ببینید علی ابن سوید بله. اسناد رو میزنید حالا تا این بیاره بذارید از اون برم نگاه کنیم توی جامعال احادیس هم ببینیم چی؟ سی و سی تا آره این دیگه خیلی دیگه تکتاریه این نرم افثار جامعال احادیس یه خیلی تکتاریه چون یه کتاب چندین چاپ داره ترجمه داره شرح داره اینا اون چه دیگه خیلی یعنی اون درایت ال نور اون واقعی تره هرچن اونم خیلیش تکراری هست حالا اینجا خودمون میبینیم دیگه کاری نداره تفسیر قومی پس معلوم شد تفسیر قومی از علی ابن سوید روایت داره حالا اینو الان به چه درد ما میخوره الان اولا علی ابن سوید رو میتونیم سندها رو نگاه کنیم اون سندای خودمون که جلسه قبل کار شد مطمئن شیم بهش الان اینجا ببینید پس تفسیر قومی یه حدیث از علی ابن سوید داره این رو بخونیم. اخبر انا احمد ابن ادریسه، خاله حدس انا احمد ابن محمده، ان حسین ابن سعید، ان بعض اصحاید. حسین ابن سعید داشتیم توان طرق قبلی؟ حسین ابن سعید به نظرم داشتیم. حالا الان نگاه میکنم پیداش نمیکنم حالا یه چیزی تو زهن من هست که انگار داشتیم ولی الان اینجا نیست البته من با اون نرم افزار ایکس مایند براتون کشیدم اون طرق رو اون رو اجازه بدید نشونتون بدم دوباره اینجا کتاب کجاستون كتاب... كتاب... خدا ها این نامه علی ابن سوید ببینید یه همچه کارم میتونید انجام بدید خیلی الان نامه علی ابن سوید منابه و طرق نوشتم چرا منابه و طرق منابه یعنی اون کتابایی که نامه توش هست زک شده طرق مثل طریق نجاشی و فهرست توصی به علی ابن سوید اون دیگه منبع نبود چون نامه رو نیابرده خب الان امام کازم علی ابن سوید چه... پنی پا... نفر طبق این این شاخهی که نوشتیم قشن روشنه پنی نفر از علی ابن سوید نقل کردن یونوس ابن عبد الرحمان محمد ابن منصور خوزایی همزت ابن بزی علی ابن حیب مدائنی احمد ابن زید خوزایی حالا اونی که چشی برای ما نقل کرده بود علی ابن حبیب مدائنی بود مثلا کافی محمد ابن منصور خوزایی بود اینو داشته باشید از این روش ها استفاده کنید هی hey, خروجی بدید هی hey, خروجی بدید اینها رو انشالله به درد طلب دیگه هم میخوره این بحث اما سنده تفسیر قومینه ببینید با کدوم یکی از اونها شبیهه احمد ابن محمد حسین ابن سعید. ها حسین ابن سعید رو ببینیم نه انگار حسین ابن سعید نه انگار نیست حتی اونایی که اینجا الان من میبینم نیست. خیلی خواهد. ان بعض اصحابه هی ان همزت ابن ربی. آقا همزت ابن ربی آشنا نیست براتون؟ ربی. همزت ابن ربی براتون چی رو تدایی کرد؟ همزت ابن بزی رو تدایی نمیکنه؟ کنه؟ تصیب شده دیگه. ببینین؟ علی ابن سوویت؟ راویش همزت ابن بزی هست حالا اینجا آقای علی... تفسیر قومی میگه همزت ابن ربی از علی ابن سوید من همینجوری ندیده الان 80 درصد مطمئنم نمی تحصیفه نمیشه علی ابن سوید یه راوی داشته همزت ابن ربی یه راوی داشته همزت ابن بزی این دوتا عین همان تقریبا لذا تحصیف شده البته قهت اینه بله اول ولی خب دیگه تقریبا میشه اطمینان پیدا کرد. قالا این شیبانی اوورده ببینید شیبانی چی بوده؟ سای بوده. قاله سل ت بددا سال ها الله از ز ول ظال که نهو کان تحتی هم رسول هم بل قال بیهات همول مه. خب آقا این حدیث الان خوندم براتون یه نکته بگید من نگم همش شما بگید الان یه نکته بگید علی ابن ابراهیم این ر... روایت کرده از همزت ابن ربی یا بزی از علی ابن سویت که میگه از عبد سالح پرسیدم اسمی از نامه نیست ولی به نیست این بخشی از نامه بوده من همین نکته رو ارز کردم خدمتون این نکات نکات الله امروز پای هشتی ها کمن بین ما درس, خارج... همه درس خارجی هستی دیگه خیلی خوب خیلی از آجان سلطانپور ببینید اینا برای یک فقیه برای یک محقق خیلی مهمه مطلب به اون سادگی که تو کلاسای فقه به شما نشون میدن به اون سادگی ها نیست حدیثو دیدی ببین سقه هست یا نه در بحثام راحت کرده کار رو معتبر غیر اینا نمیشه گفت الان من مطمئنم که علی ابن سوید از امام کاظم نامه داشته و سوال پرسیده اینجا میگه سالت الابد الصالحه لذا این سندش حتی اگر مرسلی قطعی نمیدونم و از اصحاب هیچی از اینا هم باشه باز برای من تا حدی این از ضعف‌تر میاد حالا نمیگم مطمئن میشم ولی از ضعف در میاد به مدار کار دیگه انجام میدیم بهش مطمئن میشیم اطمینان پیدا میکنیم مخصوصا که اینجا میگی که قال البینات هم ال... در مورد بیانات سوال کرده بعید نیست چون تو نامه هم از این چیزا سوال کرده بود باید نیست این باش خب این علی ابن سوید قرب ولسمادم که همون که دیدیم بود کتبه این دیگه نامه بود که اون می براتون ها بلاغات النساء بلاغات النساء الان از اون کتابایی چه در حوزه علمیه قم خیلی مرسوم نیست چیزی خیلی باش آشنا نیست ببینیم چیه علی ابن سوید ابن منجوف از هشام ابن اوروه ان ابیه قال بلاغه آیشه این معلوم میشه یه علی ابن سوید سنی هم داشتیم راویه سنی هاست. این نیست که ما داریم. چون منجوف ابن منجوف برای ما یه مقدار قریبه. گویا همینه. بله نسام که کتاب حدیثی یه چیز نیست. نیست. که. علی ابن سوید ابن من تو الغارات هم هست. میبینید؟ اما بسائر ندیگه کتاب ماست. این علی ابن سوید. ان ابل حسن موسا علیه السلام فی قول الله حالا این هم سنت شو ببینین بسار درجات حتی احمد ابن محمد از, احمد از محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل خاطر تون هست دیگه درسته داشتیم تو سنت ها, ها محمد ابن اسمایل محمد ابن اسماعیل بزی از حمزه حمزه چی بود؟ احموش بود دیگه این همون محمد ابن اسماعیل. حتی جلسه قبل من دوست داشتم بگید یکی از رفاها گفت گفت تو همین سند چشی هم یه محمد ابن اسماعیل داشتیم بعید نیست این باشه اون دویگه تحقیقی میخواد ببینید هر کدوم از سنده ها میشه روش یه هفته تحقیق کرد ولی دیگه ما همین مقدارش هم به نظر همین زیادی هم هست اینا رو میشه کار کرد. خب حمزت ابن بزی از علی ابن سوید از امام کازه این یه دیگه از سواله. فی قول الله تعالی یا حسرت علی مافرت تو فین جنب الله قال جنب الله امیرالمؤمنین سوالات گویا خیلیاش در مورد امامت بوده احتمال داره ها نگفتم حتما احتمال داره که این حدیث هم تیچه دیگری از اون نامه باشه گفتم با سازی نامه علی ابن سوید از امام کازم میشه این رو استفاده کرد البته دیگه نباید خیلیام ساده برخورد کرد که یه نفر محقق نگاه کنه بگه اینا رو هرچی هر چی به دستش رسیده آورده نه اونجوری هم نباید برخورد کرد ولی با تحقیق و بررسی میشه به اطمینان رسید خب اینم چه کافیه جلد یک جلد کافی جلد یک اون جلد 8 بود روزه بود این جلد یکه اصول کافیه ببینیم این چیه محمد بن یحیی از محمد ابن حسین از محمد ابن اسماعیل دیگه سندی همونه آره ان حمزت ابن بزیه میبینین ان بناسی و یا از امام کازم فی قول الله همون یا حسرت و همون اینجا هم ذکر شده علی ابن بناسی از ابل حسن اول میدونید امام کازم هم حسن اول دیگه کنن اگه اینو اگه خاطرتون نمونده یا بار دیگه من عرض میکنم حسن اول امام کازم علی السلام ابالحسن سانی امام رز امام حادی. امام حادی دیگه چه وفاتشون بود چون پدر امام حسن عسکریه دیگه ابوالحسن سالس به این شکل سالتو عن قول الله عزوجل و من یتوکل علی الله ببینید احتمال داره همون تو نامه پرسیده یا شاید هم بیرون پرسیده نمیشه اینو قطعی گفت ولی احتمال اون هست کافی جلد دو کافی جلد سه دوباره اینجا طریقش دیگه فرق کرد علی ابن از احمد ابن عمر حلال از علی ابن از امام کاظم دوباره سالتو عن العجب ببینید آدم به یه چیزایی میرسه یعنی امروز حدیث پیش نرفتیم ولی یه مقدار روش تحقیق کارهای محققانه شما فکر کنین اونا که محققن 50 تا مقاله نوشتن در مورد احادیث اونا از آسمون چه نمینن همینا رو مینیسن منتها یه مقدار خوش‌ذوقن یه مقدار دست به قلمشون خوبه راحت میتونن مقاله الان همین رو که امروز همین یه جلسه امروز رو بدی دست بعضی از بزرگان از توش ده تا مقاله در میاده چاپ, چاپ هم میشه مقاله علمی هجوهش ولی خب ماهای مقدار از این جهت زعیف سهل توان الوجب بعدیش جلد دو صفحه چارسد سیا شیش اسمایل ابن مهران از محمد ابن منصور خوزایی این هم یه طریق کافی بود یه طریق دیگر کافی بود این هم کافی اسماعیل ابن مهران از محمد ابن منصور خدایی همینه اسماعیل ابن مهران از محمد ابن منصور خدایی پس اون حدیث رو اینجا هم داریم علی ابن سوید از امام کازم سأل توهو اکثرش هم سأل توهوه انه زعفا بعد بابل ایسار هم داریم بکشرو ابن صالح ان بندار از محمد تبری از علی ابن سوید سایی از امام کازم تو لهو آوسی فقال آممر رو ها این دیگه میگه قول تو لهو به کاظم گفتم این دیگه انگار نامهه نیست. میشه هاتون نامم نوشته باشه میشه گفت قل ولی ظاهرش بیشتر میخوره که این دیگه اون نامهه نیست و به این ترتیب دیگه بقیش رو بله محمد بن یاه از احمد بن محمد از علی نه حکم از علیبنصورحود اینو نداشتیم این طریق رو دوباره. نه نه داشتیم خب قال قلتو لابل حسن علیه السلام اینی مقتلن به نظر الال مرعت الجمیله فیعجبان نظر و اله ها اینم دوباره قلتو و قاله لذا به نامه نمیخوره پس ما چند تا مورد رو دیدیم احتمال نامه بودن بیشتر بود چند تا هم دیدیم که احتمال نامه بودن توش خیلی کمه اینا دیگه نامه نیست خب این علی ابن سوید هم که انگار مبتلا بوده بنده خدا بله دوباره علی ابن سوید جلد هفتم علی ابن سوید سایی کتبه این اینو, اینو نگاه کنید یه لسه توجه من رو جلب کرد جلد هفته کافی صفحه 381 عدت من اصحاب از, از سهل ابن زیاد اسماعیل ابن مهران محمد منصور خوزایی. این طریق معروف کافی به علی ابن سویده. این همون طریق که داشتیم. انعبل حسن علیه السلام. دقت کنید. میگه كتب ابی فی رسالته علیه. بابام در نامش به من نوشت. و سأل توه شهادت لهم. آقا چی شده اینجا؟ چه خبر شده تو این حدیث؟ چطبه عبی این عبی چی بوده در اصل چطبه علایه بوده دیگه باباه اینجا نخشی نداره که علی ابن سوید نامه ای از پدر نداره که علایه بوده اینجا... همین دیگه تصیف یعنی همین دیگه علایه رو عبی نوشته بعد اونجا ناسخ یا جوری تو این وساطت ها اینو درستش کرده <تصفيق> آخه ببین عبارت اصلا درست نیست گویا مرم کلین رو متوجه نشده این رو کتب عبی فی رسالته علیه و سالتو این یا عبی علیه بوده یا یه احتمال دیگه ذهن محققانتون رو به کار بندازید این عبی چی بوده عبل حسن بوده دیگه درسته؟ چطبه؟ تو اون اول حسن میشه دیگه اگر مرفوع او آره اگر اند بود ان ابل حسن مثلا ولی این فائل اول حالا این احتمالش چمتر بس این ابی من تقریبا مطمئنم که ابی درست نیست چون ببین تاریخ همونه همون طریق اون نامه هست بعد نام مزمون هم نامه امام هست فیرسالت ای الهیه پدر هم به هیچ شما نخش نداشت تو هیچ کدوم از این منابکی دیدیم پدر مطرح نبود. و سهل توانه شهادت لهم فعقم شهادت لله. برای سنیا شهادت بدیم حضرت فرمه لله شهادت بده. خیلی خب این از این دیگه کافی اگه تمام شده باشه. آه این جلده هشتش صفحه 124 که همونه و تمام خیلی خب. حالا بازم هست متاحب. دیگه چون فرصت نیست آه تمهیس تمهیس نه پا ولقیه بذار ببینم آه. علی ابن سوید از امام کازم دوباره بعد توحف اینا ببینید چطابای منبع ماست همه اینا شما جلسه قبل حالا یه نفر پرسید چطابای منبع این نرم جامعه جامعال حادیست طبق تاریخ یعنی اون که لیستش رو طبق تاریخ داده اونو دست نزنید بذارت همین طبق تاریخ باشه تا قرن 5 تقریبا اکثران منابع اولیه ماست. قرن دو سه چهار پنج اینا چه نوشته شده بعد از اون کمه منابع اولیه ما کم هستش خیلی خوب آقا این هم از این مطلب که ما رو حدیث چهارم کشی دوباره یه مقدار بررسی کردیم و انشالله که اون مواردی که عرض کردم شما هم توجهتون رو جلب کنه و در اون موردها اینشالله کار بکنید اما تو این چند دقیقه که باقی موده حدیث شماره پنجم رو شروع کنیم اگر در مورد حدیث چارم مطلبی نکته تحقیقی چیزی داشتید بفرمایید مطلبی نیست اون پیشنهاد من رو اگه تونستید انجام بدید بعدم به من هم اطلاع بدید بازسازی نامه امام کاظم به علی ابن صوریت شاید بعضی خوش‌قلم باشن بتونن بیشترش هم بکنن 50 صفحه کتاب بنویسید چه اشکالی و مطمئنن باشید که کس کار رو انجام نداده خب اما بریم سراغ حدیث پنجم از رجال چشی حالا ما چون وقت نیست دیگه فقط میخونم یه دور اجمالا یه نگاهی بهش بندازیم برای هفته بعد دیگه من از شما رفقا یه خواهشی دارم کم کم دیگه کار رو خودتون انجام بدید. الان تقریبا سب چه کار دستتون اومده دیگه روش کار و سب چه کار دستتون اومده سند رو نگاه می میدید سراغ اعتبار سنجی به شکل سلسله وار زنجیری و اون شجره وار مینویسی بعد دونه دونه راویان رو بررسی میکنی راحتش دیگه نرم افزاره بعد کار مهم دیگر تخریج میکنید حدیث ببینید تو کدوم منابع هست اون منابع اولیه اونا خیلی مهمه بعد ممکنه اون حدیث با تعابیر دیگری توی منابع باشه اشکال نداره اون رو میارید و بعد ببینید تو اون شاخه راویان کدومشون صاحب کتابه این هم تو بررسی فهرستی به درد میخوره و دیگه برای اطمینان هم هر چیزی که میشه شما رو به اطمینان برسونه همه اونها رو لحاظ کنید از جهت دلالتی هم ادبیاتش رو ببینید قرائن هم در اون اطراف روایات دیگری که داریم اون باوی که هست و سایر روایات رو ببینید به دلالتش اطمینان پیدا بکنید این روش کار اوایلش مقدارش سخت باشه ولی به مرور دیگه آسان می‌شه و باعث میشه که خودتون یه تسلاتی هم پیدا میکنی. خب اما حدیث شماره پنج کتاب مرحوم چشی. محمد بن مسعود بن محمد قال حدسنی علی بن محمد فیروزان القمی یو تعبیر تو حدیث چهار اگر خاطرتون باشه فلان ان فلان بود. درسته؟ اینجا جا حد دسنی داره. بذارید رو ببینم. این عبارتها رو توجه کنید. میخوام توجهتون به اینا جلب بشه. ازش نکته شاید به دست بیاد. ببینین حدیث شماره چهار. خاله حتی سنا فلان حتی سنی فلان آن علی ابن سهود این حتی سنا آن علی این تا با هم فرق داره حالا تو پنجمم میکه محمد ابن و مسعود ابنه محمد قال حتی سنی علی ابنه محمد ابنه فیروزان ال قومیو قال حتی سنا احمد ابن فلان میاد تا آن اسماعیل ابن جابر آن ابی عبدالله این الان باید بر شما یه سوال ایجاد بشه که در سنت وقتی میگی که حد ده یا حد ده سنا اون موقع چه میگه فلانان ان فلانن، انفلانه فلانن، این فرق داره یا نه تو منابع اهل سنت مطمئن باشید فرق داره اونا خیلی زابط مند و خیلی اصولی و قانون مند هستن تو اینا چون دویگه اونا افتادن تو این خط حدیث نویسی و سنت نویسی و اینا یک طبیعیه دیگه اون موقع چه اینا در مورد همین ضوابط سنعت نویسسی و هدث نویسسی و داشتن خودشون رو ما ما منظرمان باغ نشسته بودیم. پس این به عنوان یک ضعفی برای ما نیست. اونها حق داشتن بایدم میرفتن سراغ این اصول حدیث و سنعت نویسید. ولی ما نه لذا اونها شاید ضبط من تر باشه. اینو داشته باشید آیا تو شیه اینو با هم فرق داره یا نه. و تو همون کتاب چششی فرق داره یا نه. حالا محمد ابن مسعود ابن محمد آ این محمد مسعود چیه؟ دیگه راویه رو بشناسید دیگه چمچم چیه؟ چم. استاد چشیه دیگه تو استاد... استادای چشی محمد مسعود کیه؟ ایاشی دیگه هم صاحب تفسیر عیاشی. احتمالا این همین خودشه چرا گفتم احتمالا؟ چون هیچ چیزی رو همون اول کاری نگید حتما شاید یکی دیگه است؟ قال حدسنی این آقای عیاشی میگه حدسنی علی ابن محمد ابن فیروزان اون یکی اگر ابن نداشت ابن فیروزان درسته؟ الگمی جالبه استاد عیاشی گمیه محمد ابن فیروزان علی ابن محمد ابن فیروزان گمی تو گمی ها شنید این تو کافی این رو دیدید یعنی میخوام بگم معروف هست براتون فیروزان خیلی معروف نیست ولی قومیه این جای تعجب داره قال حدثنا احمد ابن محمد ابن خالد برقی که آشناس حدثنا احمد ابن محمد ابن ابی نصر چیه بزنتی از اسماعیل ابن جابر از امام صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یحملوا دینه فی كل قرنن عدولن ینفون عنه تحویل ما این حدیث دوباره در مورد همین بحث اشخاصی هستش که ازشون باید دین رو اخذ کنیم حالا سند رو خوندیم متنش هم بخونید یه بار جلسه بعد ان سند و متن رو با هم دیگه پیچو رو باید باز کنیم ببینیم انشالله چی هست صلوات الله فرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد ان شاء موفق باشید